به چه نگاه میکنی؟ الان نماز شروع میشود؟ به این دیوارها نگاه میکنم. چه آینه های زیبایی؟ اینها آینه های بسیار کوچک هستند. به این هنر آینکاری میگویند. چگونه این آینه های کوچک را به هم چسبانده خیلی کار سخت است. بله. این کار هنرمندان ایرانی است. آنها با دقت این آینه های کوچک را به هم میچسبانند. این یک هنر قدیمی است؟ بله. این هنر قدیمی ایرانی هاست. آنها مسجدها و زیارتگاه ها را با آینه کاری تزیین می کنند. تمام دیوارها را با آینه های خیلی کوچک که میپوشانند بله در خیلی از محلهای های زیارتی آینه‌کاری میبینیم آینه‌کاری فضا را خیلی روشن و نورانی میکند همینطور است عجله کن نماز شروع میشود